یه چیزی یاد گرفت. 5 میلیونش رفت آقا اما یه چیزی یاد گرفت. میگه این حزینه این تجربه ای که بده است. تجربه رو جواهر بدون. چه اونایی که خودت تجربه کردی چه اونایی که دیگران تجربه کردن. آقان کسیه که این تجارب خودشو تجارب دیگران رو مثل جانش دوست میداره. من خدا چقدر تو قران آقا اینا رو گفته سیروف الارض فنزرو کیفه کناقبه المكذبین میگه یه نگاهی بکن تجارب دیگران یه نگاهی بکن می اونایی که بیراه رفتن عاقبتشون چی شد کجا رفت یزید ابن معاویه کجا رفت ابن زیاد کجا رفت ما کجا رفت شمر ابن زنجوش سینو فیلال هی اونایی که بیراه رفتن عاقبتشون چه شد اونایی که در مقابل خدا ایستادن عاقبتشون چه شد اونایی که فرمان خدا رو نبردن آقابتشون اونایی که در مقابل خدا سرکشی کردن عاقبتشون چی شد کجا رفت آن؟ کجا رفت نمرود شگیکیه که از تاریخ درس نمیگیرد. از تجارب دیگران درس نمیگیره اما میفرماید مالت نرفته اون که اونو تجربه کردی ذخیره کردی هزینه کردی یاد گرفتی آدمی ارزش دارد که هزینه کند و تجربه بکند اما اون تجربه ها رو چشش بذاره آویزه گوشش بکنه چقدر ما داریم که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه خیلی ارزش داره چقدر حدیث داریم حدیث هم من نوشتم که مؤمن کسیه که از یک سوراخ دو بار گذیده نمی حالا اگه کسی بره تجارب دیگران رو بیارد اینقدر خودش هم تجربه نکرده از تجربه دیگران این که دیگه جواهره حضینه هم نکرده مجانی میگه اینا این راه رفتن آقابت نداشت من نمیرم اینا به این شیوه زندگی کردن به سو آقابت گرفتار شدن من به این شیوه زندگی نمی کنم دیگه امشب شب هیچده همه ماه دلاتونو ببرم در خانه جوان امام من امشب بریم در خانه علی اکبر پایین پا اما خواهش کنم از جوون ها از آقایون از خانوما اگه میتونن برای جوون امام حسین بلند بلند بلند, بلند بلند بلند اگه میتونن ایکی از جاهایی که امام حسین از جگر ناله میزن بلند بلند بلند, بلند, بلند, بلند. چون داغ جوون سخته داغ جوون من یه روز صبح هشتوم هشتم محرم سهر صبح زود این منزل آقای آرونی روزه میخوندم اون, اون رو اینطوری شده اصلا جوری این مجلس به وجد آمد به گریه در من اسپند رو آتیش دیاد از مدده ها شنیدم واقعا این جوان جلو پایی من مثل اسپند میپریدم بالا میخوردم زنید من تحجیب میکنند چه نیروی اینا رو بلند میکنه و اینجورش میبنه از در و دیوار آتیش میبنه ما نکردیم ما شد من نمیدونم چی شده تو اونجا؟ من مادرش فاطمه ها نمیدونیم که امام زمان اومد خدا یه بقیه امام زمانم میاد بین شما مثلا من تو روایت دیدم هر جا ده شب ده شب برای امام حسین مجلس باشه یه شبشو اینا شرکت میکنن حالا همه را که توجه میکنه یه شبشو اصلا میان میگن اینا بریم ده شب نم نمیدونه که کیب... اصلا شما میبینین نه دیگه مدا کاریه نه گوینده کاری نه خود مستمه کاری اصلا آتیش داره درو در و دیوار میباره زن و مرد و دونم پیر مرد و جبون و زجه می این آقای انسانی اومد بعد از من بلنگو رو گرفت یه نگاهی کردید این جبون رو گرن می شن زمین گفت جبون ها من این رو از اون یاد گرفتم گفت خوب گریه می کنین اشک میریزین. می اما شما نمی فهمین حسین چی کشید اون جوون نداره که الان این جوون ها جلو آقا بال هم بزنن نمی فهمن حسین چی گشه اون جوون نداره که نمیدونه دونه جوون نیچی به امام صادق گفتم بالاترین لذت برای پدر مادر چیه خب این جوونش رعنا بشه و بالایی به داره کنه این جوون وقتی جلو این پدر مادر راه میرن. این حزم میکنه به وجدش گفتم <bueno> بالاترین مصیبت برای پدر مادر چیه گفت همین جوون جلو چشم این پدر مادر پرپر بگم، بالبال بگم نگاه کرد پیر, پیر مردم اون عقب دارن گرفت. به پیرمرد گفت شما هم خوب گریه میکنیم. اما به شما هم بر نخوره شما نمیفهمید نمیفهمین چون داغ جوان که ندیدی جوان داشتی اما جوانت که جلو تیکه تیکه نشدی نگاه کردید پدر شهیدم تو مجلس به پدرای شهید گفت به شما میگم شما نمیفهمین چون به شما خبر دادن جلو چشمت که نیومدن بچه تو تکه تکه, تکه. اما من من آقایون پدر شهید میشناسم جدو چشمش تو جبه جدو چشمش بچهش افتاد یعنی دید بچهش افتاد حتی گفت بچه ما ببرین دفت کنین الان عملیاته من نمیتونم بیام من بعد از عملیات میام اومد بردن سر قبل گذار اینجا دفنش نش کردیم ما اینم دیدیم اما همونم آقا همه زیر بقلشو میگرد همه بهش سلامتی میداده دیگه کف که نمیدادن دیگه هل که نمیدادن دیگه هو که نمیدادن دلها بسوزه برای اون پدر شهید که اون ناله میزد اونا هل. نمیدادن شیخ شوشتری میگه؟ میگه امام حسین یه موت داشته و یه قتل خیلی خوب خیلی خوب گفته میگه یه جا مرد یه جا شهید شد سرشو بریده گفتن موتش کجا بوده گفت کنار بدن علیه و علت دنیا بعد کلعفا داغ جوان سخت نمیدنم دیگه الان وقتش هم نیست ملاعباس چاووش گفت شب جمعه کاروانم آوردم کربلا گفت وارد حرم شدیم دورم رو گرفتن اینایی که سفر اولشون بود گفتن یه زیارت ها شورا بخون شب جمعه است ما آرزو داشتیم گفت خوندم مجلس گرمی شد اومدن گفتن یه نوه همدم بده گفتن منم عادتم این بود دفترم رو وا میکردم هر جا می اومد می خوندم. این قراری بود داشتم گفتن این وا کردم نوهی علی اکبر او اینا سینه میزدن عشمی چه مجلسی شد پایین پا <تصفح> کاروان رو آوردم کاروانسرها گفت انقدر خسته بودن چون خسته رسیده بودن شام نخورده خوابیدن گفت منم خوابم بود گفت تو عالم رویات دیدم در کاروانسرها رو میزن <تصفح> <تصفح> گفت خادم رفتم در گفت منم حالا دارم گوش میدم تو خواب خادم رفت گفت ملاعباس چابوش اینجا اومده گفت آره دیشب اومدن شامم هم نخوردن همه شاماشو یخته همه خوابن خودش هم خوابه گفت برو بگو خوش آبه حاله گفت چطور؟ گفت پسر فاطمه داره میاد بازدیدشو پت کنید گفت من دوون دوون اومدم دم در گفتم آقا هر جا باشه من خدمتشو میاد و هر جا باشه میام گفت نه امام گفته بشینه من میام و همین نشسته بودم یه وقتیدم خرشید جمال حسین ابن علی تو و اومدم بلنشم حضرت عجله که دست رو دارید دو من فشار داد گفت نه تو خسته ای خیلی راه اومدی نمیخواد کاش اومدم سه جمله بهت میگم میرم هرکی به زیارت من بیاد من بازدیدشو پس میرم چی بیاد منو زیارت کنه منم جمله دوم گفت شبای جمعه مازندران روزه داری یه پیر مرده میاد دم در کبشاتون رو جفت میکنه این نتونست بیاد کربلا پول نداشت رفتی مازندران سلام منو به اون پیر مرده ببنید. اما جمله سوم هر وقت شب جمعه اومدی کربلا روزه علی اکبر مید. خب مادرم فاطمه شبای جمعه حرمه طاقت روزه علی اکبر میده آخ آخ آخ آخ, آخ, آخ. قطعوه به سیوب اربن اربا با این شمشیرها بدن علی رو تکه تکه کرده هر کاری کرد کنار بدن علی دید دلش آرام نمیده آخر خوابید رو علی هي صدا میزد والدی.